اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته برادران عزیز شنوندگان گرامی ما شما سنسا درسای دولت نباوی شروع بودیم دولت راکی رسول الله صوال الله و علیه و و در مدینه نهاده بود و می خواهیم که خصوصیت کنیم و درس مو شما بالای وضعیت امنیتی دولت نبوی بود و ما حالات امنیتی رو بیان کردیم و خصوصا در درس مو دو هدف داشتیم که یک هدف مایی بود که مشاهدی نه و مهاجرین و که در دا داخل سرزمین خلافت اسلامی زندگی میکنن بر ازوا یک تذکره و یاد کنیم که اصحاب رسول الله صلی الله و علیه و به کدام وضعیت امنیتی زندگی کردن و در قدم دوم شبکه را جواب گفتیم که اینا نبودن امنیت بانه به با عزیم میکنن که هجرت نکنن جواب شویخی را گفتیم که میگن که صاحی تمکین خلافت اسلامی نداره بنابراین برونجا هجرت کدن درست نیست خاطر از که امکان شهادت و بین رفتن زیاد است حتی بعض شویخ اما دیدیم که میگفتن که اونجا زایه میشن شویخ در دولت اسلامی اگر برن گفتیم که چقدر حالات است و رسول کدام حالات دیر کرد در مسلسله درس ما او شما وقفه دو مو درس ته بیان میکنیم او وقفه دو درس ما شما دو هدف داره یک هدف شی است که تمام مجاهدینی که در سرزمین خلافت اسلامی زندگی میکنن چی در هر مکانی باشه در شام یا در عراق یا در سینا یا در بنگلادش باشه یا خراسان در هر قسمتی که از کره زمین در دا اسلام زندگی میکنن ییرا میخواهیم که ما بیان کنیم که زندگی کردن برای مهاجرین و انصار در دا دارالاسلام چه نواد امنیتی و قرص و چی باید کنند به خاطر امنو امنیت دارالاسلام قسمت دوم ما تمام کسایی که بیرون از سرزمین خلافت سنگ اسلام و ایمان به سینه و بسیار دباب فضایل کوشش میکنن که از فضیلتا برخوردار باشن و ما دعوت میتیم و بر شان میخواهم که یاداور شویم که از چی قدر فضیلتایی که رب العالمین وعده داده یا در باب یعنی محروم شدن ازی درس ما و شما یک تفصیل گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم که در درس ما گفتیم که لای ترجرا من آیا از بین دوستان ما یک دوست نیک من که برای ما امشب پیرداری کنه یحرصنی لایلا یعنی برای ما امشب پیرادری کنه به این در این شما دو مساله را میدانیم که از این استنباد کنیم یکی است که احمیت و فضیلت پیرس و دوم دیگه است بنابراین ما و شما میخواهیم که درباره باره احمیت و فضیلت پیرداری ده و عین زمان یک تسکله بخاطر مسلمان ها کنیم در بابی حدیث، اولین حدیثی که ما و شما روایت میکنیم یک حدیث است که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ما روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمودن عینان لتمسه همان نارو چشمانی که اینا لمس نمیکنه آتش عینون بکت من خشیت الله چشم که از خشیت از ترس الله مطال گریان کنه و عین بات تحرس فی سبیل الله و چشم که در الله فی سبیل الله در رباط پیرداری کنه یعنی به این معنی که موشما در اینجا از احمیت پیردار میبینیم خب اصل حدف موشما ای بود که تحکیم وضعیت امنیتی دولت اسلامی است و امنیت در دولت اسلامی شدومه و یک حدف دیگر هم بگیم که یکی از خصوصیات دولت اسلامی که در دولت اسلامی چقدر مهاجرین و انصاری که زندگی میکنن هم از اینا مجاهد هستند هم از اینا مسئول امنیت هستند و هم از اینا یعنی کل اشخاص دولت اسلامی از مردا و از جوانایی که یعنی در جمله رجال هستند هم از اینا داخل جند دولت اسلامی میشن اگر در کشور اسلامی که واقعا مثل خلافت اسلامی که امروز است حدود پینجا هزار نفر بشینه خلافت 50000 هزار داره اگر 5 لک نفر باشه 5 لک 32 میلیون باشه 32 میلیون 150 میلیون باشه 150 میلیون نفر داره نو سایر کشورهای طاغوتی نیست که نفرای دیشان جدا باشه و نفرای غیر دوشان جدا باشه همه ما که مسئول امنیت هستیم و راه به میگه که دو چشمه هیچ به دو که یکیش از خشیت و از متعال الله متعال فی سبیل الله مرابط است و پیره میکنه در حاکم از ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماید الا انبکم بلیله افضل من ليله قدره او شما رو نشانه شم شب از القدر بهتر است خوبتر است حارس و حرس فی ارض خوف یعنی پایرداری پایردار در سرزمین خوف در سرزمین ترس لعله ان لا یرجع یعنی امکان داره که می پیره کننده کسی که پیره میکنه بار دیگه پس به اهل خود نکرده یعنی به این معنا یک کسی که میاید در سرزمین خوف با پیره پیرا می یک کسی است که در که پیره میکنه کنه شب یعنی افضلیتش از از, از, از, از القدر بسیار زیاد است و میجه بود که ما میخواستیم توجه بدیم و برادرای ما که خلافت اسلامی زندگی میکنند و ما خواستیم در درس گذشته به شما گشدد کنیم که حالات امنیتی دولت اسلامی در هر مکانی که باشه یعنی از نگاه و امنیتی شدید و وخیم است و معلوم دارم است که یعنی ظاهر مسئله رو میره بیان میگن که در روی زمین به چی اندازه که ما شما توانمندی را به دست کفار میبینیم به مو اندازه و کوشش میکنند و ما این باید وا باید باشد. چرا قرآن کریم ما شما امر کرده قرآن کریم ما را با خبر ساخته که کفار به می شکل امره شما پایکار میگنن ولا یزالون یقاتلونکم حتی يردوکم عن کم این استطاعو یعنی با شما همیشه پیوسته پیکار و جنگ میباشن تا وقتی که شما را از دین دان بگردانن در دا قدر استطاعتشان و استطاعت زیر ما شما میبینیم که فعلا با چی اندازه که استطاعت داره اگر چاپا باشه یا از بم و از راکت و از حرکت و از ترور و از هر چیز نمیکنن بچه اندازه ای که ما شما میخواهیم از حالات امنیتی به مقابل دشمن در حالت استعید باشیم ما اندازه ما شما فایده دارین کمایی میکنیم یک فایده ای که ما شما را الله رب العالمین یعنی مفادای اخروی میده دیگه ای است که دا تعمین امنیت داخلی هم بسیار قوی می باشیم. در مسعد احمد دیگر روایت از که رسول الله صلی الله علیه و اسلام من حرسه و المسلمین فی سبیل الله تبارک و تعالا متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينه الا تحلت القسم يعني امام احمد ربد که هرکس کس به خاطر مسلمانان فی سبیل الله نفلی پایرا کنه یعنی متطوعا نفلی به ستادت خود پایرا کنه لا يأخذه سلطان کی یہ سلطان نامش د پایرا نشته نشه باشه طرف امیر به با پایرا یعنی امر سرش نشده باشه لم ير النار بعينه نمیبینه آتش با چشم خود إلا تحل قسمه تا وقتی که پورا نکنه قسميره کدام قسم را که فان الله سبحانه لا شريك له الله سبحانه و که شریک نداره یقول میگه و ان منکم الا وارد ها تا بین شما هیچ کسی نیست مگر که به جهنم به آتش وارد شود یعنی به این معنی که اینجا کسی که به خاطر مسلمان ها پیری میکنه که نفلی باشه بدون اینکه نماز از لس نشسته شده باشه یا مسئول شده باشه با پیره چشمای چشمایی ات شنامی مینن مگری که قسم الله مطالب براشامو چرا رب العالمین در سوره مريم آيات عبدالله گفته که و اين منكم الا واردوها هیچ کس از شما نیست مگر که يک بار با آتش یا با جهنم داخل میشن اصحاب الله عنهم وقتی که آيات میشنیدن با گيریم میشنیدن گيریم میکنن يعني یعنی که هیچ کسی نیست ولی الله رب العالمین شما را نجات بده مجموع پایین میبینیم که مردم به خاطر ازی که بخاطر فضیلت ها چقدر کوشش میکنن و چقدر میخواین که فضیلتا ها را کمایی کنن و بگیرند و در دا دارالکفر هستند هزت و فضیلت هایی که رب العالمین یعنی مستقیما انسان وعدی جنت میته هزت و فضیلت ها ماندند باز کسایی و کسایی که در مدارس هستند و هستن. کسایی که در شیوخ هستند و علماء هستند کسایی که به نام زاهد و عابد خود مشهور ساختن و میخواین که به زهد و با عبادت و به خدا مشهور بسازن باز عبدالله ابن مبارک وقتی که به قاضی عیاز خط نشته میکرد در خط خط میکد یا عابد الحرمین لو ابسارتانا ای زاهد عابد که در حرمین شریفین یا یعنی تو خبر میتیم که باید بفهمی که عبادتای تو با فکر و همی تذکر و ورق میکنی یا از بازی بیشتر نیست تلعب یعنی که تو بازی کرده یعنی گیم بازی کرده رستی بچدل دلیل البیدل دلیل که از رسول الله صلی الله عليه وسلم پرسان شد که یک عمل را بر من نشان که مسابقه جهاد باشه رسول الله صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفت که من نمی‌فهمم چه عملی باز که صحابی پرسان میکنه باز رسول الله صلی اللہ علیہ که وقتی که مجاهد فی سبیل الله در راه الله بیرون میشه تو باید نمازت دا داخل شوی و تمام عمر نماز بخوانی و روزه بگیری و عبادت کنی تا وقتی که مجاهد پس بیاد امو سوال کننده ایره پرسامد میکنه کی کار کی قدمه تا یعنی کار بسیار مشکل است و می خاطر عبد ابن مبارک یک عالم مجاهد بود و قاضی عیاس که یک عالم زاهد بود یک عالمی بود که یعنی در نوشتن و در کتاب بسیار زیاد مشهور است بسیار آثار داشت مانده در شعر برش میگه که عبادت های شما کس یک است. که یک سرگرمی است به خاطر چی میگه یک بار در و این آواز نایزه و شمشیر ببینی و خراب خراب پایاسبار را ببینی مزد خاط پامیدی که عبادت چقدر سخت هست و گرفتن جنت چقدر مشکل است و به این اندازه که شما فکر میکنی که در دا کفر یا در تحت سلطه تاغود یا در بعض جای های از بعض عبادت ها خودم مشغول داشته باشه در دا حقیقت یعنی مثلا در بعض تقوای های مستحب خودم مصروف داشته باشه و اصل تقوی هست بهشتانبانه یعنی امکان نداره ما به میخاطر با شما میگیم دوتان میکنیم که اصل عبادت و اصل تقوی و اصل فضائل در سرزمین خلافت است و در دا دارال اسلام است و شما سعی کنید که به چی اندازه رب العالمین فضیلت ها رو بر مجاهدین داده و خواب مجاهد که است خوابش در عجر و در ثواب حساب میشه به این خاطر ما خواستیم که مشیوخ و مولما و طالبایی که در مدارس میخواین که به زهد و تقوا مشهور باشن و میخواین که از فضیلت ها بسیار زیاد استفاده کنن خیر دا در ها داخل شوند که خواب کردن و گشتن و سفر کردن در اینج سیاحت و فضیلت است چرا سیاحت از که از جهاد است در بخاری روایت از ک رسول الله صلی الله و علیه و سلام فرمودن تو با لبد اخذن بعنان فرسهی فی سبیل الله خوشحالی است مرای بنده ای که دیگر رسمان اسبش در راه الله حرکت کنه اشعث راسه و ببر باشه موهایش مغبرت قدمه و خاکالوت باشه قدمه کانفی کانه فی حاساصی اگری در پیران استاد میکنن می باشد در پیرره و فی ساقتی کانه فی ساقتی اگری در آخر لشکر استاد میکنن استاد میباشه در دا آخر لش کرد ان استعدان لمزن لهو اگر اجازهگیره کس برش اجازه نمیته و ان شفع اگری اگر بخواید کهشفاعت کنه، شفاتش قبول نمیشه انب ای مانا موشماک می بینیم به ظاهر کسی که به میخصوصات باشه یک نفری که دارای مویای ببر و خاکالود است و قدماش خاکالود است، خاکپر است و رسمان عصبش به دستش است و در فی سبیل الله بنامده به جهاد و به قتال و اگر عمر میشن که باید در باشه، در پیره باشه در پیره باشه و اگر عمر و که در آخر لشکر باشه در آخر می میباشه و اگر اجازه میخواه کس برش اجازه نمیته و اگر میخوای که شفاعت کنه کس کس شفاعتش قبول نمی یعنی خوشحالی به حالت ازی کسی که به تو حالت باشه یعنی از بندای نزدیک علی متعال است و کسایی است که برای بلالومین مقرب است پس اولین تنبیه که اینجا متوجه میشه ما گفتیم که دو بحث داریم سر هدف اول خود کمک و نقطه نگاری میکنیم اولین تنبیه که داریم ما به جای کسای تنبیه میگیم که در جهاد و در در اسلام زندگی میکنن یا را میگیم که برادر مجاهد تخوا را اختیار کنه و هر جایی که دو یا سه برادر با هم می باشین در اونجا خام و خواب پیره کنه خواب و خوب پیره استاد کنه اگر که شما خواب می باشین دیگه شما پیره میکنه و دیگه شما خواب می دیگهتون می میکنه و عینامیک است جهاد و در جنگ و در قطال و در میدان پیکار از سنت رسول الله صلی الله و سلم است و میخاطر شریعت متحر اسلامی مع شما را بعد از نماز و خوفتن، فورا به خواب کردن حمر میکنه که باید ما شما خواب کنیم بخاطر ازی که از کارهای بیفایده و از کارهای زوایی وقت نجات پیدا کنیم و می خاطر بخاری و ده مسلم متفق علیه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خوفتن گپ و سخن خب، و, و مجلسا را بعد یک استثنا اندی وارد است که امرای زن و امرای مهمان کسی که خانم استم روی خانم خود بشینه یا کسی که میمون دارم روی میمون خود بشینه د ی مستثنا آمده استثناات غیر از او یعنی رسول الله صلی الله علیه و بعد مکروه عمر رضی الله تعالی عنه بعد از نماز خوفتن کسایی که مزاق مذاق داشتن یا مجلس داشتن با هم میشتن یا رمیزد لط میکند و برشان میگفت که در قسمت اولش او قسم میکنین و در آخرش باز خواب میکنین به گرنگ میشه از نمازهای تحجد و از نمازهای صبح میمونه به این خاطر هیچ شک وجود نداره که پیرهداری در رای الله عزوجل و جل اینمی ربات است به خاطر از اینکه ربات میده میگن که در یک جای پیره کنیم که در اونجا ترس دشمن وجود داشته باشه به با خاطر اول باید ما شما کلمه ربات به برادرای ما تشریح میکنیم کلمه ربات اصلاً سرحدات ما و سرحدات مسلمان‌ها رو نگا کردن شهر رباط میگن و کسی که در اینجا سیلی مرابط میگن و معنای شرعی رباط یعنی جایی که به خاطر ترس دشمن به خاطر ترس از حمله و چاپه و ورچند دشمن ده اینجا ما شما پایراداری میکنیم و در حالت تیارseid هستیم و دشمن نمیمانیم که ما را غافلگیر کنه و بالای ما حمله ور شوه این می رو به رباط یاد میگن پس به تمام مجاهدین این تنبیه است از طرف دولت اسلامی و از طرف تمام فقها که ما و شما باید تمسک کنیم به سنت رسول الله صلی الله و علیه وسلم چه قسمی که در وقت مدینه امنیت خراب بود و اصحاب تدابیر می‌گرفتن و به خاطر پایرا و به خاطر حراست از سرزمین مسلمانان یعنی کامیابی دارین نصیب می‌شدن کامیابی آخرت که فضیلت‌های یک مادبا به پیر بیان کردیم کامیابی دنیایی است که دشمن سر و شما غالب نمیشه و ما و شما همیشه دشمن شکست می‌دهیم و از غفلت ما استفاده نمی‌کنند رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمایا در حدیث صحیح آمده که میگه الرباط یوم و, و ليله خيرا من صيام شهر و قيامه رباط کردنی یک شب و روز در راه الله متعال بهتر است از قیام و سیام یعنی از روزه و از نماز تحجد و قیام لیل یک ماه کده یعنی شما سعی کنین که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما شما چی یک فضیلت بزرگ ربایان میکنه در این فضیلت رسول الله صلی الله علیه میگه که یعنی در یک شبانه روز رباد کردن از یک ماه کده نفلی روزا و از قیامش کده بهتر است و هر کس که در این حالت وفات شود یعنی این عمل به ایچی میباشه جاری می باشه کردن رباط صدقه جاریه است یک نفر در رباط شهید میشه تا وقتی که رباط تا عمر مختبایی صدقه جاریه رسد. و رزقش هم جاری می باشه و از فتنه نکیر و منکر به با امن باشه سبحان الله ما شما کنیم که اگر ما شما کسی که آباد زاهدی که در پاینا شهرها و در مناطقی که فعلا زندگی میکنن دور از خلافت اسلامی اینا با این اندازه ثبات ندارن که یک موهره پای در پای متسلسل روزه بگیرن و در روزه گرفتن یا رقم روزه بگیرین که هم سیام و هم قیام داشته باشن سیام یعنی روزه و قیام یعنی که قیام لایل کنن نماز بخونن و اگر بکنانم بعضا از یک ماه کدا یک شب و پایرا چی است افضل است پس این کنین که چقدر فضیلت فضیلتا در میدان جهاد است در دیگر روایت هست صحیح البخاری روایت میکنه که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم می الله علیه و سلم میفرماید رباط یومن فی سبیل الله خیر من دنیا و ما علیها رباط یومن ربات کردن یک روز فی سبیل الله در راه الله خیر من دنیا و ما علیها بهتر است از دنیا و همه چیز در دنیا است شما سعی کنن عزیزی که کسایی که مثلا از پیره و از ربات دوری میکنن و کسایی که در رباتان در داخل خاک خلافت اسلامی و کسانی که مثلا هجرت کردن آمدن به دارالاسلام هستند و از ربات دوری میکنن و پیره نمیرن اینا را کس چقدر یک فضیلت دور نگاه داشتن سایکنن که یک روز رباط رسول الله صلی الله و علیه و سلم از دنیا و هر چیزی که در دنیا اصل دا که افضل دانستن اگر ما میفهمیدیم اگر یک می دانستیم و این فضیلت درک میکردیم که دنیا اسباب است و کدام سبب زود انسان به جنت نزدیک میکنه والله العظیم ما از اون سببای نزدیکتر استفاده میکنیم و ما میبینیم که رباط و جهاد و استشهاد و انقماسی نزدیکترین راهی است به خاطر داخل شدن به جنت هر راکس، هر عمل هست. هر طریقه کس رای کوتا داره ولی کوتا ترین رای رفتن به جنت و رضایت الله مطالک است ربات و جهاد و استشهاد و انخماؤسیه درست است که بعضی کسار علمای سو و بعضی کسار شیطان و بعضی کسار شیطان های انسی و بعضی کسار شیطان جنی میخوایند که مانیشان قرار بگیرن سر رایش قرار بگیرن و شیطان همیشه در کمین است و وقتی که انسان بخواهد به اسلام بیاید س و میگه که میخوای مسلمان شوی و دین اجداد و آبای تا ترک کنی وقتی که هجرت کنی اثرای هجرت واقع میشه و میگه که میخوای هجرت کنی و زمین و آسمان تا ترک کنی وقتی که به طرف جهاد بره شیطان دادم ورش استاد میشه و برش میگه که میخوای جهاد کنی که وجوب قتل شوی فوت کنی شهید شوی و بعد از شهادت با خانمت مردم نگاه کنه و با خانمت بگیرن یعنی مسائلی است که یک نفر مجاهد و مهاجری که بدرستم آمدگی ایره به شکل از اشکال میخواهند که از های رباط دور بسازن پس برادرایی که اجرات کدین برادرایی که بدر اسلام اومده بر شما امر رسول الله صلی الله علیه و وسلم و شریعت متحره اسلام و به این حال تمام عراقین دولت اسلامی در تمام مکانهایی که از زمین قرار دارن چه در دا و چه در باشه به با شما توصیه میکنن و تنبیه میکنن شما رو به که رباط کنین جهاد کنین و به جهاد به خطوط بری و حفاظت و حراست از سرزمین ها و از سرحدات و مسلمانان کنید ده انشاءالله بسیار خیر است باز گفتیم که هدف دوم از بالای هدف دوم کماکوری نقطه نگاری میکنیم و او هدفی بود که کسانی که گفتیم میخواین که از ها محروم نباشن و بیاین ها را کمایی کنن پس بهترین فضیلت اول اسلام آوردن است باز حج از باز هجرت است پس با شما هجرت که می کنید رب تمام گناه های قبلی شما رو می بخشن. و در بعض هجرت که شما می داخل دارالاسلام الاسلام و دار اسلام رو بات می کن. یک شب رو شما از همه چیز دنیا که افضل است سبحان الله بعضی کسار ما می بینیم که میاینو بانه میکنن که خانم چطور میشه و موترم چطور میشه و فامیلم چطور نمیشه و حال و احوالم چطور نمیشه و همه چیز به جای میمانه و مال دارم و زندگی دارم و نام دارم و شهرت دارم سیگنین که رسول الله صلی الله علیه سلم به شما چی میگه ربات یومین فی سبیل الله خیرون من دنیا و ما علیها از دنیا و همه چیز دنیا کس ربات یک شوه است ما شما دنیا آمدیم بخاطر از این سبب پیدا کنیم که سبب یعنی باعث شوک از ما الله متعال راضی شوبیم و ما شما جنت کما کنیم چرا هدف زندگی که الله رب العالمین که ما شما را خلق کرده و عبادت خلق کرده با این نکرده که ما خانه جور کنیم ما ترجور کنیم زندگی جور کنیم و خدا از تمام فضیلتات دور داشته باشیم بعضی کسا میای میگه که من تدریس می در مدرسه اگر ما بگوییم که سرزمین خلافت اسلامی یک جایی است که شما را از تدریس و تعلیم باز می داره یک خطا کردین شما بین هم فضیلت های جهاد و رباط و هجرت بگیرین و همچنان هم درس و, و تدریس دعوت هیچ شما نمیشیم پس شما سعی کنین که یک شب رباط کردن یک روز رباط کردن از دنیا و همه چیز دنیا که افضل و بهتر است پس شما متوجه باشین که چیزهایی که شما پیش میکنین همه از یا به یک شب رباط نمیارزده دنیا اگر کل دنیا از شما باشه و هر چیزی که دنیا اساس شما باشه باز هم به با یک روز ربات رو مساوی و یک روز ربات رو از او که افضل و خیر است پس کسایی که دوای اسلام میکنین فضیلتا را هم کماحقهو کس هم در قبول کنه و در خلاصه برادرای مؤمن مجاهد و مسلمان از خودتان و از تان حفاظت و پیرداری کنه ناراستی در را راه نکنه چرا که ما بارها بارها اثرات ناراستی ها را دیدیم و چقا مشکلاتی که برای شما پیدا شده از می پیدا شده با خاطر بنده های الله از الله تعالی تقوا اختیار کنه و ترس اختیار کنه و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلام را نکنه چرا که بسیار پشیمانی به شما متوجه خواهد شد درس امروز شما هم قسمت پایان میشه یه خلاصه درس بیان میگنیم ما گفتیم که در درس خود بالای ابزای با امنیتی و ابزای امنیتی بالای ذکر زدیم که ابزای امنیتی دار الاسلام در هر اماکنی که قرار داره پر از خطر و خوف هست برای از ای که چطور ما نگه میکنیم و تدابیری که داریم به خاطر امنیتی تدابیر امنیتی ما شمایی که که الله رب العالمین چقدر مجاهدین اگر دا یک دار جای بجای میکنه هم از اینا جند داولات اسلامی هستن و از دولت اسلامی دفاع میکنن اگر هزار نفر یا یک لک نفر یا 5 لک نفر یا 60 یا صد میلیون نفری که باشه کل از اینا در بخش جند هستن و همش مجاهد هستن با این خاطر گفتیم که ربات یا پایرا کردن یا پایرداری یا حفاظت از سرحدات اسلامی کس یک طریقه و استراتژی است که دولت اسلامی به خاطر تامین امنیت داخلی خود استفاده میکنه و دارای دا دو بعد است بعد معنویاتش است که از بسیاری فضیلت های قوی برخوردار است و بادمودی مادیشی است که ما شما در سرزمین اسلامی با امن و با امان و با سال زندگی میکنیم و اندازه امن که قسم که رسول الله صلی گفته بود که یک نفر از صنعا تا حضر الموت بره هیچ خوفی نایباش مگر از الله یا یعنی گرگی که در همه گزفندش داخل نشه و ما شما در سرزمین اسلامی معنای حقیقی امنیت ان شاء حس میکنیم و در کل گفتیم که یک تنبیهات برای داشتیم در داخل خلافت اسلامی و یک دعوت کلی بر کسایی که می که از فضیلتها برخوردار باشن و ما میخواهیم که در قسمت از وا یعنی از خود ما محبت نشان بتیم و چیزی دیگه بخواد می خواهیم بوا می خواهیم از فضیلتهایی که محروم هستن می خواهیم که به بفضیلتها ملحق شوان بارک الله لنا و فی القرآن نظیم و نفعنا و اییا کن و ذکر الحکیم السلام و علیکم و رحمت الله و برکات مرحمة الله الرحمن و الله و برکات